بسم الله الرحمن الرحيم رصيده بوديم ببحث بحث المطلب الثاني المندوب مطلب دوم بحث ناه مندوب را است المطلب الثالث الحرام او المحرم مطلب سوم حرام يا محرم 22 شماره 22 كتاب الحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والالزامي فيكون تاركه مأجورا مطيعا وفاعله آثما عاصيا سواء كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كحرمة الزنا أم كان ظنيا كالمحرمات بالسنة الآحادية وإن الحنفية لا يطلق الحرام الا الا ما كان دليله قطعيا فان كان ظنيا صوبيا بالمكروهي تحريما بی فرماید حرام آن است که طلب کرده است شارع از شارع پروردگار دست نگه داشتن از آن را به شکل حتمی و الزامی حرام آن است که شریعت درخواست کرده است دست کشیدن از آن را به شکل قطعی و به شکل حتمی و الزامی کافی یعنی است. دست کشیدن دست نگه داشتن پس در نتیجه تاریک حرام معجور هست اجر میبرد مطیح هست فرمان بردار هست و فائل آن یعنی فائل حرام گناهکار و نافرمان هست برابر است که دلیل اثبات آن قطعی باشد که هیچ شبهی در آن نباشد مانند حرمت زنا حرمت زنا با دلیل قطعی ثابت است لا تقربوا زنا لا تقربوا تقربوا با قرآن کریم ثابت است فرقی نمی کند میگه مساوی است که این حرام چه با دلیلی قطعی که آن شبه نیست ثابت شده باشد مانند حرمت زنا یا با دلیلی زندی ثابت شده باشد یا دلیل آن زندی باشد مانند اون محرماتی که با حدیث واحد حرمتشون ثابت است و در نز حنفیه دقت داشته باشید و در نز حنفیه اطلاق نمیشود کلمه حرام مگر بر آن چیزی که دلیلش قطعی باشد باله مثل فرض واجب. اینجا هم اونی که دلیلش قطعیه بشت میگن حرام و اونی که دلیلش زندی هست بشت میگن مکروه تحریمی احناف بیگن مکروه تنزیهی که همون مکروه استلاح دیگر فقه و مکروه تحریمی که حبول حرامه ولی حرامی که با دلیل زندی ثابت شده باشه همون حرامه هیچ فرقی نداره ولی فقط در دلیل دلیل زندی یعنی شما اگر اون حرام مکروه تحریمی رو انجام بدید مجرمید اگر ترکش بکنید فرمان بردارید ولی دلیل چیه؟ زانیه حرام نیست که دلیلش چی باشه حالا اینا ببینید اینا اختلافات است در اصطلاحات و دکتر زیدان در اون کتاب کاملش میگه که این یک اختلاف لفظی است یک اختلاف جاست لفظی البته این تقسیم بندی احناف دقیق تر است. این تقسیم چرا؟ خود چون یه طلبه یک مطالعه کننده در کتب دینی پی میبرد موقع میگن مکروه تحریمی به نوع دلیلشون هم پی میبرد آه. به نوع دلیلشون هم چی؟ مم. ولی در آثار یکی هستن در آثار چه, مک... چه حرام باشه چه مکروه تحریمی بجرم است؟ گناهگار است. آسی است و عقوبت داده میشه متوجه شدید اما در بحث تکفیر فرق داره خب اگر یکی اومد مثلا حرامی رو که با دلیل قطعی ثابت است انکار کرد فرق داره با اونی که با یه دلیل زنی ثابت است اینجوری بیان خب. تو و و یستفاد حالا تحریم از کجا گرفته میشه؟ از کجا استفاده میشه؟ از کجا افاده میشه؟ از کجا بدونیم که این عمل حرام است؟ در, در رابطه با واجب گفت که واجب از کجا گرفته میشه؟ یعنی از کجا بدونیم؟ گفته بود تلب. تلب تلبی که قرینه باش راه نباشه که بگه که آقا دلالت بر مستحب بودن بکنه اینجا هم و تحریم من استعمال لغزن یدلو التحریم بمادتی لفظی الحرمتی او نفی الحلی بیگه این حرام بودن گرفته میشه از استعمال لفظی که با ماده و با ریشش دلالت بر حرمت میکنه بانند این که آقا آمده باشد که این چیز حرامون یا علیکم یا حرمت علیکم و کن این کلمه حرمت با مادهش به ما میگه که این چیز چیه؟ حرامه. حرمت عليكم و الدم، مردار برای شما چیه؟ پس میگه است... تحریم گرفته میشه استعمال میشه از استعمال لفظی که دلالت بر حرمت میکنه با مادش با ریشش اه؟ اینجا لفظ حرمت با مادش دلالت بر چی میکنه؟ بر حرام میکنه که لفظ الحرمتی مانند لفظ او نفی الحل یا یه ناسی داریم که نفی حل میکنه چی میکنه؟ نفی حلت و قوله علیه الصلاة والسلام مانند این حدیث که پیغمبر جان صلی اللہ علیہ وسلم نیگه لا یحلو نفی حلت کرد حلال نیست حلال رو چکار کرد؟ نفیش کرد پس آقایون این حرمت استفاده میشه یا با ماده اون فل کلمه مانند حرمت علیکم یا با نفی حلت در حدیثی در نسی بیاد که این چیز بر شما حلال نیست پس معنیش اینه که بر شما چیه دیگه؟ حرام. حرامه مانند این حدیث که میگه لا یحلو معلوم رئین مسلم الا بطیب بن حلال نیست مال هیچ مسلمان ای مگر فارضایتش او استفاد و تحریم بین سیغه تنهی المقترنتی بمایدل و علال حتم یا دیگه از چه گرفته میشه یا فهمیده میشه و گرفته میشه حرام بودن از سیغه نهی اه؟ مثل لا تقرب و زنا لا تقربو سیغه نهی آن نزدیک نشوید لا تسریق دزدی؟ لایقتم بعضو کن غیبت نکنید یا میگه گرفته میشه تحریم از سیغه نه اون نهی که همراه هست ای که دلالت بر حتم میکنه آقا اینجا این دلالت بر حتمی بودن و الزامی بودن میکنه ترتیب العقوبتی علالفه یا از کجا گرفته میشه این حرام بودن؟ از با ترتب بودن عقوبت بر انجام کاری شریعت میگه آقا این کار نکنید در غیر این صورت وارد مثلا جهنم میشه مید. خب بوقعی که عقوبتی ترتیب داده میشه بر کاری به واجب اگر اونو ترک کنید عقوبات داره ها پس دانسته میشه کول کار واجبه اینجا همه اگر این کارو دست نکشید عقوبت هست پس این ترتیب دادن عقوبت انجامش دلالت بر چیش میکنه دلالت بر حرمتش میکنه خودش مثال آورده برای هر دو تا ثمن الاولی قوله تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واتربوا قول الزور اینجا تحریم با سیغه نحی اومده نحیی که باقرینه اومده که دلالت برچی میکنه الزامی بودن فا بر با رجس من الاؤسان و اجتری قول, قول زور آقا از ها اجتناب کنید آقا از قول زور سخن ناحق اجتناب کنید بر نحی کنید و این نحی جا دلالت برچی بیکنه اون حرمت اگر ای باشه که اونو به کراحت برسونه اون باقی نهی حمله بر چی میشه؟ بر کراحت میشه. مثل امر که ای کنارش بود اونو به مستحب بودن بیرسون اینجا هم ممکن است یک نهی باشه و ای همراهش باشه و از حرمت به کجاش ببره به کراحت ولی این نهی ما که اینجا آمده قرینه به ما نمیره کی دلالت بر چی میکنه بر کراهت بلکه پس دلالت بر چی میکنه بر حرمت خب ترتیب عقوبات هم مثال شو آورده و بیانی تقریر قول او تعالی ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انهم يبايقون في بطونهم nara وسيصلون سعيرا همان کسانی که اموال یتیمان را از اینها در شکمشان آتش می‌خورند و وارد آتش می‌شوند، وارد آتش خواهند شد اینجا اقوبت برای این کار آورد برای خوردن اموال یتیمان پس ما می‌دونیم که خوردن اموال یتیم روی ظلم حکم شیه حرامه چرا؟ چون عقوبت برش دعیم شده بحث دیگه خودش واضحه آورده بود شماره 23 و اقصاه حرام حالا که اومد حرام و توضی داد گفت که ما از کجا بدونی کار حرامه انواع حرام و توضی و بعدش میره به بحث مکروه من ال... من استقراء الاحکام الشرعيه ان الشارع لن يحرم شيئا الا لمقصدته وهذه المقصدته اما ان ترجع الى ذات الفعل المحرم وهذا هو المحرم لذاته و اما ان ترجعه لا الى ذات الفین بل الى امر متصل به و هذا هو المحرم لغیره دقیقا داشتواشین یک تقسیم بندی خیلی قشنگی رو اینجا ورده که برای یک فقیه خیلی راهنمای خوبیست خیلی راهنمای خوبیست میگه که آنچه که از استقراع احکام شریعت ثابت است با استقراء کردن استقرار رو دیگه تو منطق خود دید معنیش چیه؟ آره یعنی بررسی کردن حالا تا بناقص داریم با کاری به این بحثی نداریم میگه آنچه که از استقراء تتبع و بررسی احکامات شرعی ثابت است این است که شارع هیچ چیزی رو حرام نکرده است مگر به خاطر مفسده‌ای که درش هست مگر به خاطر فسادی که در اون امر وجود داره و, و میگه این مفسده این فساد یا به ذات اون کار حرام برمیگرده بیگرده یا اون حرام... که بهش میگن حرام لذاتی یا محرم لذاتی یا به ذات اون فعل بر نمیگرده شریعت یک کاری رو حرام کرده نه به خاطر خودش به خاطر ذاتش بخاطر یه مسئله دیگه که بشه برتبته مثلا محشروب نمیدونم علمدرشته یا نه مثلا خودش از ضررش نمی باشه ولی مثلا نه ولی مثلا, مثلاً ببینید زنا حرامه فی ذاتیه ولی یک سری کارایی داریم که تیزاتی حرام نیستن اما منجره به چی میچن به زنا میچن لسو شریعت تومده اون کارو، اون کارا رو هم چی کار کرده حرامشون حرام حرام حرام قرار داده استاد مثل لا تقرابو نگفت زنا نکنی به زنا نزدیک نشکن بله, بله،, بله، کارای که انسان رو به زنا میکشن هم چی به خاطر امری دیگر الان مثلا بیشتر آیات مثلا سن کنی مثلا ع... نادی بودن, نادی خودش بودن خودش به سالا رو جلو اگه نفهمیدید اول واقعه توضیح بیشتر میدید پس یا این حرامه یا این مفسده به ذات فعل برمیگرده کل واقعه روش میگه حرام الل ذاتی یا نه به ذات فعل بر نمیگرده بلکه به امری دیگر که اون امر با به اون حرام هست برمیگرده که بهش میگن محرمه ل یعنی آقا این چیز حرام کرده شریعت ولی به خاطر امری دیگه خاطر مسألين ديقار قال إيجاد ديقات كنت فالمحرم لذاته كدومه والمحرم لغيره كدومه فالمحرم لذاته هو محرم الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه كالزنا وتزويج المحارم وأقل الميتة وبيعها وقتل النفس بغير الحق ونهو ذلك وحكم هذا النوع أنه غير مشروع أصلاً ولا يحل للمكلف فعله وإذا فعله لحقه الذب والإقابه ولا يسلح أن يكون سبباً شرعياً تترتب عليه أحكامه وإذا كان محلاً للأقد بطل العقد لقد عشت واشيد محرم لذاته آنست كشاري ابتداءاً وأصلاً عن حرام قرار داده است به خاطر ضررها و مفسده هایی که ذاتی که درش وجود داره و ازش جدا نیست در ذاتش مفسده وجود داره. جزء ولایت فکشه. ماند زنا، مانند ازدواج با محارم، مانع خوردن مردار و فروشش، مانع قتل دیگران و امثال این چیزها. بیگه حکم این نوع حرام یعنی حرام لذاتهی این است که به هیچ وجه مشروع نیست اصلا و مشروع نیست و حلال نیست برای مکلف انجام آن و اگر هم انجامش داد مال مذمت میشه و مستحق اقام میشه و این نوع صلاحیت اینو نداره که سببی شرعی قرار بگیره برش احکامی مترطل بشه هیچ نوعی حکمی برش مترطل نمیشه و اون اگر هم احیانا ای شد عقدی شد اون معامله چیه؟ باطله, باطله. خوب ولیکن قد یباحو بعض انواع المحرم لداتی انده ضروره میگه ولیکن بعضی از انواع محرم لذاتی در بعضی حالات چی میشند؟ مباح میشند بعض در بعضی حالات هنگام از ضرورت هنگام چی؟ فالمیتتو تو اکلوها اندخو فی الحلاق بردار حلال است خوردنش هنگامی که ترس حلاقت باش آقا شخصی در بیابانی نزدیک است که حلال شه خب اینجا دیگه وارد در میشه برای این شخص در این حالت میشه حلال میشه خب بعضی میگن آقا حلال نیست ولی گناه حرام برش نوشته فمن غیر غیرا باغن فلا اثم علیه ولی کاری نداری هر چه باشه در هر صورت نتیجه ایکی چون مگر باکسری بیس فرق هایکی خب بریم فیلا پس بیگی که ولیکن قد یباحو بعض عنوال محرم لداته ادن الضرورتی فالمیتتو یحلو اکلوها ادن خوف الهلاق والخمرو یحلو شربوها دفعا لهلاق النفس شراب حلال میشه دوشیدنش زمانی که طرف تشنه باشه و در معرض حلاکت باشه. لان حفظ نفس ضروریه، فکان لابد من تحصیلیه بیاب حتما. دیگه چرا یه حفظ جان حفظ نفس ضروری است. از ضروریات است پس ناچارن برای این که این ضرورت حفظ بشه، این محرم چی بشه؟ به بعض پس این شود از محرم و والمحرم لغيره هو ما كان مشروعا في الاصل الا لا ضرر فيه ولا مفسده وانما نفعته هي الغالبه ولكن قد ترنا بما اقتضى تحريمه قد داشته باشی میگه محرم لغيره آن است که در اصل مشروع است که در اصل که است مشروع است زیرا ضرر و مفسده درش نیست یا منفعتش بر مزرعتش است غالب است اما همراه با چیزی هست که اون چیز حرمتش رو می میکنه در اصل حرام نیست ولی همراه با یک مسئله دیگه هست همراه با یک عبری هست که اون چیز حرمت اینو چیکار میکنه اقتضاش میکنه با مثال واضح میگرده که صلات فی ارد المقصوبه مانند داره نماز خوددم در زمین رسمی. آقا اصل نماز مشروعه ولی زمانی که در زمین رسمی باشه چی میشه؟ حرام میشه پس اگر اینجا نماز حرام میشه به خاطر ذاتش نیست به خاطر امری دیگر است به خاطر ابري ديگر است والبيع وقت نداء الجمعة معاملة وقت نداء الجمعة آقا بي اصلا مشروع است ولی موقع نداء جمعه موقع اذان الجمعة حرام میشه بخاطر به خاطر مسئله ای و نکاح المقصود به تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقی ها آقا نکاهی که طرف میخواد اون زنی رو که طلاق داده شده برای شخصی دیگر حلالش بکنه خود اصل نکاه چیز مباهیه ولی از جایی که اینجا مرتبط به عمری دیگر هست چی میشه؟ حرام, حرام. حلاله چی میشه؟ حرام میشه و نحو ذالک مما أرد له التحريم لأمر خارج عن ذات الفعل وأمس عليه إن تشيز هاي حرمت برشو الوارد بشيء، ولي بأمري خارجية ذات الفعل، لا بخاطر خود ذات بل كأمر خارجي ذاته إبن عليه بأمري دجال، فلاس التحريم لذات الفعل لأن الفعل نفسه خال من المفسدة والضرر، ولكن اتصل به ما جعل فيه مفسدة وضرارا. میگه تحلیم اینجا به خاطر ذات فعل نیست زیرا خود فعل خالی از مفسده و مذرت است خالی از فساد و زرر است اما به این امر چیزی متصل است که در اون امر مفسده هست که در اون عمر اون امر خارجی درش اشجه مقصده و است. هست فالصلاة مثلا به ذاتها مشروعاتون بگه به عنوان مثال نماز به یک چیزی مشروعی هست نه تنها که حرام نیست بل کسی یک چیز چه هست؟ مشروعی هست ولیکن لما اتصل به محرم و هو الغصب جا انهی و انه سلاة فی الارض المقصوبه اما میگه که یک چیز حرامی وصل شده که همون غصب هست غصب حرامه لذا نه مبد از نماز در زمینه ولی ها اگر کسی اومد مثلا یه مساله فقهی حالا تو زمینه نماز خود آیا نمازش درسته یا نه میگه ما نمازش درسته ولی کار حرام انجام داده ولی کاره ولی گروهی از فقها میگن که اصلا نمازش درست نیست این بحثش در اصول فقهای بزرگ مثل مستصفیه امام غزالی میاد و اینجا مفصلا این مسائلو بررسی می‌کنه خب بریم جلوتر و نکاح بذاته مشروع ولكن النكاح لغرض التحليل فيه مفسده الطلاق بالاسباب الشرعيه فكان منحيان عنه لهذا السبب بگی بیان مثال مثال دیگه میاره نکاح به ذاتیهی یک مسئله است یک عمر مشروع است. اما زمانی که نکاح به خاطر تحلیل باشد شما برید بروی این زن متلقی رو که الان سه طلاق شوهرش بهش داده و نمیتونه عقدش بکنه، اگه به این نیت که بیایی من این زن رو می ازدواج میکنم که برای شوهر اولش حلال باشه اینجا دیگه نکاح چی میشه؟ حرام میشه ولی به خاطر ذاتش نیست به خاطر این عمر خارجیه خاطر این مسئله هست بیگه نکاح به ذاتی مشروعه اما نکاح اگر به غرز تحلیل باشد درش مفسده است. آقا اینجا بازی کردن با اسباب شرعه شرق اصلا غرزش این بوده که زنها رو به زودی طلاق ندن اگر بیان طلاق گرفتار به این میشند که تا این زن و یک شوهر دیگه ای نره باشه ازدواج نکنه نمیتونه بهش برگرده لذا به راحتی زنار رو طلاق ندن اگر ما بیایم این راه پیدا بکنیم که خب تحلیل رو پیدا بکنیم دوباره اون هدف اصلی شریعت چی شد حرص شد از بین رفت لذا میگه فکان ان ان ه... لذا میگه از نکاح نه شده به این سبب از این نکاح در این حالت و با این است به این سبب چه شده نه شده و حکم این النوع حکم این دو ایدو یعنی محرمه ب غیره حرامی که به خاطر امری دیگر حرام است نه به خاطر ذاتش یقوم على اساس نظرتنا الیها يقوم على أساس نظرتنا إليه فالمحرم لغيره مشروع من جهة أصله وذاته وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعية أصلها على حرمة ما اتصل به فقال إنه يصرح سببا شرعيا وتترتب عليه آثاره وإن كان هي عنه بإعتبار ما اتصل, به يا ما اتصل به ومنهم من غلب جهة فصاد ما اتصل بالفيل على مشروعية أصله فقال بفصاد الفيل وعدم ترتب أثاره الشرعية عليه كيف تحصل إلى القشنجر؟ أحمية أصول الفيقه كالشماره التقيق الريز مصائل يمكن أن تكون هناك حديثة تنهائي كيف يمكن أن يكون هناك ذهنة من طرفنا فقائي قبل أنه كاركا إنه مصائل برئيسان روشن در هر صورت بیاید دیگه حکم این نوت یعنی حرام لغیری میگه بسگی به نگاه ما داره که ما چطور اینو برد کردیم. چه نظریه‌ای در رابطه با اون داشته باشیم محرم لغیری میگه از جهت اصل و ذاتش مشروع محرم لغیری حرام لغیری از جهت ذات و اصلش چیه؟ مشروع، اما از این جهت که یک امری دیگر بهش متصله حرامه، ذاتن حلاله و به خاطر امری دیگر چیه؟ حرامه. حالا دقت کنید. برخی از فقه ها برخی از فقه ها همین جهت مشروع بودن از جهت اصلش رو غالب دورسن آ یعنی همین اصل اصل و ذات خودش رو غالب دورسن نه اون امر خارجی رو که بهش متصله لذا گفتن اون آثاری آثار برش مترتب میشن یعنی نماز خود نوازش درست رفت نکاح و امجاب داد اثرش رو بر جا گذاشته گرچه کاره حرامی انجان داده پس برخی از فقها ها گفتند اون جهتش که از جهت اصل مشروع اینشو غالب دونسته فمن الفقه های من غلب جهت مشروعیت اصله على حرمتی متصله به این جهت شک در اصل مشروع. بر حرام بودن اون امر خارجی غلبه دادند در نتیجه چی گفتند؟ فقاله پس گفتند اندهو یصل و حو سببا شرعیه صلاحیت سبب شرعی رو داره پس برخی از فقه ها این نظریه رو دارند که آقا اصلشو در نظر میگیریم اصلشو غالب میدوریم نه اون امر خارجی رو که اومده دارد. این گروه از فقه چی گفتند؟ گفتند که پس این صلاحیت سبب شرعی رو بیتونه داره و داشته باشه و تترتبو علیه آثار و آثار هم برش مترتب میشه اگر اومدیم کار حرام لغیره رو انجام داد اون آثاری رو که اگر حرام بود چه آثاری داشت الان همون آثار رو داره و ارکان ما اتصل به اعتبار ما متصل به اگرچه که منهیئا هست ازش چه شده؟ نه شده به اعتبار اون امر خارجی و بنهم و برخی از فقها چی گفتن؟ من غالب جهت فساد متصل به الف لا مشروعیت اصل و برخی از فقها غالب دانستند اون امر خارجی رو ها اون امر چی رو بر مشروعیت اصلش که اون امر خارجی حرام اصلش مشروع ولی اون امر متصل رو چیکار کردن غالب دونستند فقال اینا چه جواب دادن به فساد الفعل اینا گفتن نه آقا این فعل که انجامش داده بیخرد فاسد به درد نمیخوره آثار هم نداره که الی میخوره گویا که اصن انجام نگرفته و تو ترتب اثر شرعی لذا در نتیجه هیچ اثر شرعی هم نه داره. این بحثی تفصیلی هست ولی ما میگوییم که آقا حرام که حرام هست ولی این که آی آثارش مترتب میشن یا نه ما بیشتر مائله به این قول هست. بیشتر مائله به همین قولی هستیم که حرام هست ولی اون آثارشو به جای میگذاره و مترتب میشه